گشتم شده جاری نوت به هر یوازاری بی اندوز تو ارباب دستم داری تو عربام دوستم داری منی که پای روزت روزی میگیرم آخرش بین روزت روزی میمیرم منی که نرخش رو با خریدم به هوای حرم تا روزت دویدم آب رو کن منو آب بر حرم آب کن از منو یاری کن <سر> هرم آقا برام کاری کن آقا برام کاری کن یا ابا عبدالله حسین الله یا <سر> <يا> ابا عبدالله <سر> <ما شاء الله. سر> کسی رو پاش نباشه <سر> <صار> الله یا ابا عبدالله سنسار الله یا عبا عبدالله لا عشق داره آوازه اسم تو جنون سازه عشق داره آوازه اسم تو جنون سازه حیعت یعنی که اینجا راه کربلا بازه راه کربل آوازه حرمت بس که زیباست فوق جنانه ولی قسمت همیشه با دیگرانه حرمت بس که زیباست فوق جنانه ولی قسمت همیشه با دیگرانه آقا خسته شدم من میسوزم شب ولی بازم صبورم با نام آب رو کن منو ببر حرم آب رو داری کن باز منو یاری کن آقا برام کاری کن آقا برام کاری کن یا عبا الله یا حیعت بیت الزهره سلام الله علیه btzs.ir